حکایت مرد و مازاری را حکایت کنند که سنگی بر سر صالحی زد، درویش را مجال انتقام نبود سنگ را نگاه همیداشت داشت تا زمانی که ملک را براندشگری خشم آمد و در چاه کرد درویش اندر آمد و سنگ در سرش کوفت گفت او تو کیستی و مرا این سنگ چرا زدی گفت من فلانم و این همان سنگ است که در فلان تاریخ بر سر من زدی گفت چندین روزگار کجا بودی گفت از جاحت اندیشه همین کردم اکنون که در چاهت دیدم فرصت غنیمت دانستم ناسزایی را که بینی بخت یار آقلان تسلیم کردن دختیار. چون نداری ناخونه دررند تیز، با ددان آن به که کمگیری ستیز. هر که با پولاد بازو پنجه کرد، ساعد مسکین خود را رنجه کرد. باش تا دستش ببندد روزگار، پس بکام دوستان، Mak за